که کوه پایدار مانند و جویباران جاری باشند تا آن هنگام داستان راما در میان مردمان رواج خواهد داشت ازدواج راما و سیتا در سواحل رودخانه سارایو که سرشار از ثروت و قله است قلمروی کسالا قرار داره که به خاطر پایتختش آیودهیا که در ایام بسیار قدیم مانو پدر بشریت اونو ساخته در تمامی کره خاک مشهوره. روزگاری شاه داشاراسا در انجا فرمان روایی میکرد. رایای خودش را رازی نگه داشت و قانون مملکت را پاس میداشت. او که همه چیز و همه کارش به کمال بود، تنها یه چیز کم داشت. پسری که دودمانش رو ادامه بده. داشاراسا، کاهن دربار یعنی واسیشتای پارسا رو فراخوند و از او و به رحمانان بزرگ دیگه خواست که آین قربانی تدارک ببینند همه به یکباره به رهبری واسیشتا سوگند خوردند بیگمان علی جناب هر تعداد فرزند که آرزو کنی خواهی داشت آنگاه شاه داشاراسا رو به وزیرانش کرد و گفت باید زمین مراسم قربانی بیدرگ آماده بشه از فرمانهای کاهن اطاعت کنید. هنگامی که مکان مورد نظر آماده شد، واسیشتا و کاهنان دیگه بر حسب دریافت‌های کاهن مراسم قربانی را آغاز کردند. صدای مانتراهای ودایی آیات مقدس فضا را پر کرد و از هدایای قربانی بخوری برمیخواست که گناهان شاه را به هنگام استنشاق می‌زدود. چون آگنی خدای آتش پدیدار شد، خدایان دیگری هم با او اومدند که فوجی از سیدها و گاندها مقدسان و آوازخانان آسمانی اونا رو در میان گرفته بودند. اونا همه یه صدا به سخن در اومدند و گفتند از هنگامی که روانای ابلیس بر کره خاک پدیدار گردیده و روح بزرگ به او قدرت داده، هیچیک از ما از حمله های او در امان نیستیم چون نمیتونیم بهش چیره بشیم. بادا که به بزرگ آفریننده جهانیان انایت کنه تا آدمی زاده ای به دنیا بیاد که بر روانا دشمن خدایان و حکیمان فائق بشه. به یکباره، از آتش قربانی روحی با شکوه و بی همتا سر برآورد که در دستهاش ظرفی پر از مایع آسمانی بود و اینگونه با داشاراسا سخن گفت ای بزرگوارترین پادشاه این نوشیدنی را بگیر و به همسرانت بنوشان وقتی نوشیدند کسی که برای او قربانی کردی پسرانی به تو خواهد بخشید آنگاه شاه که از شادی در پوست خودش نمی گنجید در حالی که سرش را به نشانه تعظیم فرو افکنده بود ظرف رو گرفت و به کاخ برگشت نیمی از آن ماعده آسمانی را به کاوسالیا و نیمی از باقی مانده اون رو به سومیترا و نیمی از یک چهارم باقی مانده رو به کایکی داد و برگشت و آنچرا که بازمانده بود دوباره با سومیترا داد هنگامی که داشاراسا سرگرم این کار بود به رحما به خدایانی که به آسمان بازگشته بودند فرمان داد فرزندانی به او بدید که از نظر شایستگی برابر شما اما از نظر شکل مانند میمون باشند یک سال گذشت و همسران داشاراسا پسرانی به دنیا آوردند. نفر اول کاوسالیا که صاحب پسری به نام راما شد، کایکیکی که بحاراتا را به دنیا آورد و سومیترا که دو پسر به نامهای لاکشمانا و شاتروگهانا را به دنیا آورد. واسیشتا کاهن خانوادگی بسیار مشعوف شد و در یازدهمین روز ولادت اونا مراسم نامگذاریشون را برگزار کرد. این چهار برادر در حالی بزرگ شدن که راما با لاکشمانا دوست بود و شاتروگهانا به بهاراتا عراقه داشت. آنگاه روزی فرارسید که شاهداشاراسا تعیین کرد که چه کسی باید به همسری راما در بیاد و هنگامی که موضوع رو با واسیشتا میون گذاشت پارسای توانا ویشوامیت را به دربار او اومد. پادشاه به شایستگی از ویشوامیترا که با ریاضت دراز مدت پیشگوی کاسته بهرحمانان شده بود و همچنین از بدو تولد به صورت موروسی جنگجوی کاسته کاسط بود استقبال کرد و آنگاه ویشوامیترا دلیل اومدنش را به پادشاه گفت ای پادشاه بزرگ در مسیر زندگی ام همواره دو دیو راکشاسا به نام های ماریچا و سوباو مزاهم مراقبه و مراسم دینی من شدند. شجاعت اونا زیاده و در کاربورد سلاح چیره دستند و میتونند به هر شکلی در بیان. طبیعت من چنانه که در خشم هرگز نمیتونم از پس اونا بر بیام. بنابراین ای حضرت کمک بزرگترین پسرتان راما میخوام که همراه من باشه شاید او بتونه راکشاساهایی که به من هجوم میاره از بین ببره شاه هنگامی که این تقاضا رو شنید تا مدتی بحت زده مود و انگاه آرامش خودش رو بازیافت و خطاب به زاهد بزرگ زاده این گفت پسرم راما با چشمان خمار و صورت جوانش هنوز 16 سالش نشده سپاه بزرگ من شاید بتونه وظیفه ای رو که در برابر شماست انجام بده اما نمیدونم راما چگونه میتونه بر این دیوها پیروز بشه، چون حتی هنوز دوران آموزش جنگ تموم نشده. در این هنگام، واسیشتا با ملاحظه احساسات شاه این چنین به او پند داد. علا حضرتو، امکان نداره که به راما آسیبی برسه، زیرا خود ویشو وامیترا با مهارتی که در کاربرد سلاح داره میتونه بر راک چیره بشه، بگذار از فرزندت مراقبت کنه و آموزش او را به کمال برسونه شاه داشاراسا راسا با این سخنان آرام یافت و در پی پسرش راما و همچنین لاکشامانا فرستاد و بعد با کاوسالیا آیینهایی به جا آورد که خوبی را پیش بیاره و شر و بدی رو دور کنه آنگاه با دعای واسیشتا هر سه پار شدند همین که چند فرسنگی در طول رودخانه های سارایو پیش رفتند ویشوامیترا راما رو نزد خودش خوند و گفت پسرم بیا اینجا آب رو در دستات بگیر و ورت ها رو برای قدرت ستورگ بیاموز در سه هیچ کس حریفتو نخواهد بود آن شب رو در ساحل سارایو گذروندند و صبح روز بعد هنگامی که راما و لاکشمانا بر تخت های سفری خود قنوده بودند ویشوامیترا اونا رو بیدار کرد و گفت برخیزید سپیده داره سر میزنه، برخیزید و مراسم نیایش های روزانه رو به جا بیارید. بنابراین اونا بعد از اون که حمام کردند و غسل‌های تذکیه کننده روح به جا آوردند ویشووامیترا را به جنگلی که در اون نزدیکی اشاره کرد و به اونها گفت آنجا در مسیر جنگل ماده دیوی به نام تاتاکا زندگی میکنه. اون مادر ماریچاست که برای کشتنش شما رو به کمک خواستم. اکنون ای راما. این ماده دیو هم بلای جان برحمنانه و هم گله گاوان. بنابراین وظیفه توی که او رو از میون برداری و کارش رو بسازی. لازم نیست به خاطر زن بودنش بهش رحم کنی. کسی که از منافع مردمش بازداری میکنه، پیوسته باید اون چرا لازمه انجام بده. خواه سخت و بیرحمانه باشه یا نرم و مهرامیست. تا قانون رو برپابه داره. راما که از سخنان دلیرانه دل و جرعت گرفته بود. با یاداوری اونچه پدرش درباری فرمون برداری از چنین این دستورهایی به او گفته بود، کمانش رو برداشت. اون رو با قدرت و استواری تمام به دست گرفت و زهر رو با چنان صدای حراسناکی کشید که هوا بر خود لرزید. هنگامی که تاتاکا اون صدا رو شنید از خشم نعره کشید و در جنگل پیش آمد و با راما چهره به چهره شد. ماده دیو با فریادی وحشتناک با راما و لاکشمانا درگیر شد اما راما با تیری تن او را درید و او در جام مرد همین که تاتاکا کشته شد دو برادر با ویشوا میترو در میان جنگل پیش رفتند تا روز ششم فرا رسید ناگهان ماریچا و سوباهو در برابرشان ظاهر شدند راما از شدت خشم نیزه ای رخشان حواله ماریچا کرد ضربه چنان پرتوان بود که ماریچا را از جا کند و به درون اقیانوس پرتاب کرد. آنگاه راما گرزی مشتعل برداشت و بر سینه سوباهو فرود آورد که او هم در جا از پا درآمد و مرد. اکنون که راکشاسه کشته شده بودند و دیگه قربانیان از آزارشون در امان بودند، را به افتخار راما آین قربانی برپا کرد و گفت به کمک تو رامای قوی پنجه من به هدفم رسیدم، اکنون بیا میسیلا شهر شاه جاناکا سفر کنیم در آنجا جاناکا شاه را که آین و قربانی قربانی داشته خواهی دید. همچنین محکمترین کمان‌ها را خواهی دید که یکی از اونا شایسته قهرمانی چون توست. آنها از آوردگاهی که دیوها در اونها افتاده بودند به سوی شرق پیش رفتند و پس از طی مسافتی دراز به دیار جاناکا شهر میسیلا در ویدها رسیدند. وقتی جاناگا شنید که بیشوا میترا رسیده، بیدرنگ بیرون آمد و با شاتاناندا، راهب خانوادگیش به استقبال او شتافت. جاناکا در حالی که به نشانی احترام کف دستهاش رو بر هم نهاده بود، تا کمر خم شد و چنین گفت: ای شایسته ترین پارسایان، به راستی من افتخار میکنم که شما با این دیدار به من لطف کردید و دو دوچندان خوشوختم که هنگامی رسیدید که من مراسم قربانی برپا داشتم. اما ای بزرگزادی‌ترین دانایان، این دو جوان که شمایل پهلوانان دارند و همراه شمایند کیستند؟ در این هنگام ویشوا میترا دو فرزند داشاراسا را به جاناکا معرفی کرد و ماجراهاشون را تعریف کرد و گفت که اونا اومدن تا درباره کمان چیزهایی بدانند. هنگامی که جاناکا این را شنید فورا پاسخ گفت کمانی که از آن سخن میگی اینک اینجاست. اگر راما واقعا قادر باشه این کمان را خم کنه و ذهه اون را بکشه. من دخترم سیتا که زاده زمینه و از مادری نامیرا متولد نشده به او با این سخنان جاناکا 150 جنگاور پیش اومدن که عرابه هشت چرخ رو پشت سر خودشون میکشیدند و کمان محکم و عظیمی بر اون قرار داشت راما قدم پیش گذاشت کمان را برداشت و آن را چنان خم کرد که از میانه شکست و دو تکه شد و از صداش آسمان ها به لرزه درآمد جاناکا گفت اکنون به چشم خیش قدرت و شایستگی رو دیدم که باور نمیکنم دیده باشم راما پسر داشاراسا با نژاد خورشیدی خودش به راستی پهلوانی بزرگه دخترم سیتا اگه او رو به همسری بگیره افتخاری برای خاندان من خواهد بود اکنون این ویش را شریفتر از همه وزیران من با اجازه شما ره سپار آیودهیه خواهند شد تا داشاراسای پادشاه را با نهایت ادب به اینجا میسیلا دعوت کنند. چیزی نگذشت که فرستادگان برگشتند و داشاراسای پیر رو با خودشون به میسیلا آوردند. جاناکا فوراً به او نزدیک شد و کلمات احترام و میز بر زبونش جاری شد. ای پادشاه، به سرزمین ویدها خوش آمدید. با حضور داشاراسا پادشاه بزرگ میسیلا از افتخاری والا برخوردار شده اکنون با نهایت خرسندی دو عروس به تو میدم سیتا برای همسری با راما و اورمیلا برای همسری لاکشامانا و اجازه بدید مانداویا و شروتاکرتی دختران برادرم كوشاده هواجا به همسری باهاراتا و شاتروگهانا آن دو برادر جدایی ناپذیر در بیاند شاه داشاراسا با بزرگواری عروسهایش را پذیرفت و بیدرنگ درباره جشن عروسی گفتگو کردند و قرار گذاشتند. هنگامی که لحظه فرخنده و خوشی فرارسید، فرا رسید، جاناکا شاه سیتا را در حالی که به تمامی زیورهای عروسی آراسته بود، به محراب آورد و در برابر آتش مقدس او و راما را چهره به چهره کرد و اینگونه با راما صحبت کرد. این سیتا دختر من در تمام کارهایت یاور دائمیت خواهد بود. لطفا مرحمتی کن و دست او را در دستان خود بگذار زیرا او به شوهرش وفادار خواهد موند. این پیوند بسیار فرخنده است و او از همسرش چون سایه پیروی خواهد کرد. آنگاه راما دست سیتا را گرفت و واجه های آینی و مذهبی به جا آورد و سوگند ازدواج یاد کرد. برادرانش هم به ترتیب دست عروسهای خودشون را گرفتند و از دعای خیر جاناکا شاه بهره شدند. آنها همگی دور و آتش مقدس راه رفتند و دست راستشون را در دست هم قرار دادند. روز بعد را رو خداحافظی کرد و به کوههای خاوری رفت. شاه داشا بعد از اون که از پذیرایی بزرگوارانه جاناکا و هدایای زیبای او تشکر کرد، به راه افتاد تا به آیودهیا برگردد. و چهار پسرش هم با همسرانشون با او رفتند. هنوز چندان دور نشده بودند که آسمان تاریک شد و صدایی وحشتناک به گوش رسید. همچنان که داشا در اندیشه بود که این علامت وحشتناک چه معنایی داره، ناگهان چشمش به پسر جاماداگنی، نابودکننده نژاد کشاترییا کاست جنگجویان افتاد که داشت می‌آمد. او که حیبتی ترسناک و گیسوانی در هم هم داشت، گرز و کمانی در دست گرفته بود و نامش پاراشو راما بود. خطاب به راما گفت از قدرت و شایستگی پسر داشاراسا بسیار شنیدم. همچنین شنیدم که چطور کمان عظیم رو شکستی. حال با کمان نیاکانم که به دست من افتاده برای پیروزی بر برکاست جنگاوران به اینجا آمدم. بنابراین قدرت خیش رو ثابت کن و تیری در این کمان وحشتزا که روزگاری از آن جاماداگنی بوده بگذار. راما چون سخنان پارشوراما را شنید، کمان را کشید و تیری در چله آن گذاشت و رها کرد. پسر جاماداگنی حیرت زده ایستاد و این کار سترگ وحشتناک را تماشا کرد و گفت اکنون می دونم که تو نابود نشدنی، کشنده دیوان و ابلیسان و همتای خدایان هستی. بنابراین دیگر به هیچ وجه احساس شرم نمی کنم که کسی که سربرس جهان است مرا خار کند. تیر را رها کن زیرا من تمامی سرزمین ها و قلم را تسلیم می کنم و همکنون به کوه ماهند را می شتابم آنگاه راما تیر را رها کرد تا شتاب بگیرد و به یکباره تمام سرزمین هایی که تحت نفوذ پاراشوراما بود از حاکمیت او بیرون آمد هنگامی که داشاراسای پادشاه، نتیجه موفقیت آمیز این برخورد رو دید بیش از اندازه به برشت اومد و پس از آن بی هیچ پیش ناخوشایندی سفر به آیودهیا رو ادامه دادند و در اونجا چهار برادر خرسند از اینکه در خدمت پدرشون هستند با همسرانشون زندگی کردند فصلها بر راما و سیتا گذشت از نظر راما سیتا همسری که پدر برایش برگزیده بود به خاطر سرشت نیک و مهربان و زیبایی بسیارش دلبند و داشتنی بود و از نظر سیتا راما دو چندان محبوب بود زیرا هرچند قلب راما آنچه را در دل سیتا بود فاش و آشکار میخواند سیتای میسیلایی دختر جانکا تا امیغترین اندیشه او را چنان میخواند که شایسته یک ایزد بانو است می‌تونی روزی بهاراتا و شاتروگهانا این برادران و دوستان جدای ناپذیر نزد دایی خیش برادر کایکی رفتند که در آنجا بمانند به محض روانه شدن اینان شاهداشاراسا داشراسا که میدانست زمان تفویز و ازایف و مسئولیتهایش رسیده به این اندیشه فرو رفت که کدام یک از پسرانش را باید جای خیش بر تخت بنشاند زیرا هر یک همچون دستی از بدنش برایش عزیز بودند اما در این میان راما کسی بود که برای تمام آفریدگان روی زمین و از جمله پدر خود شادی بسیار به آورده بود و به خاطر خصلت‌های نیک بهترین نامزد برای ولی احدی بود. پس داشاراسا همه وزیران و درباریانش را فرا خوند و به اونها گفت حالا دیگه و فرطود شدم و زمان اون رسیده که برای رفاه کشور ولی احتی انتخاب کنم. قصد دارم از میان پسرانم، اون رو که به نظرم از همه شایسته تره به عنوان یوواراجا یا ولیعت من صوب کنم و او راماست چون راستی و درستی رو او در این کشور برپا داشته. با شنیدن سخنان او بزرگان کشور همه با هم دستهاشون رو نیلو فروار بلند کردند و یک صدا فریاد زدند. آرزوی ما نیز چنین است که رامای قهرمان رامای قوی پنجه بر فیل پادشاهی سوار گردد و چتر شاهی بر رخسار اشتایی افکند. او شهروندان را به اندازه خیشان و بستگان خود دوست دارد. پسرتان راما، رامای سیه چرده به سان نیلوفر کبود، رامای دشمن را به ولی گمارید. آنگاه داشاراسا گفت، باید در این ماه فرخنده یعنی چایترا که بیش هزاران غرق در گل و شکوفه مراسم انتخاب ولیعهد را رو برگزار کنیم. سپس روبه سومانترای عرابران گفت هرچه سریعتر راما رو نزد من بیار. همین که راما نزد داشاراسا پدر خود آمد شاه ولی را را به او اعلام کرد و این کلمات پند آموز بر زبان راد. همه مردم تو رو دوست دارند و از این رو تو یوواراجا جا خواهی شد اما به یاد داشته باش که همانا پادشاه عادل و درستگاری که مردم رو خوشنود و خرسند میکنه به همان اندازه محبوب اوناست که نوشیدنی های بهشتی مورد علاقه و محبوب خدایانه. پس همواره مراقب رفتار و کردار خیش باش و زمام هوش و خرد خود را از دست مگذار. فردا آب مقدس رو بر تو می پاشیم. بنابراین همکنون نزد همسر خود برو و تمام شب مهار اندیشهات رو در دست بگیر و بربستری از برگ کوشا بخواب در این مدت یارانت مراقب و نگهبانت خواهند بود، زیرا معمولاً چنین این خطرها و مشکلاتی با خود داره، باهاراتا و شاتروگهانا اکنون بیرون از این شهرند، و هر هرچند آنها همچون برادران خود درستگار و مهربانند، اما مراقبت است تو به مصلحت نزدیک تره. هنگامی که راما اجازه رفتن گرفت، یک سر نزد مادر خود کاوسالیا رفت و همسر خود سیتا و زن دیگر پدر خود سومیترا و پسر او شامانا را آنجا دید. مادر برای او آرزوی خوشبختی کرد و بعد راما با همسرش سیتا به خانه خود رفتند. در همان زمان، مانسارا کنیز گوش پشت کایکی بر بام کاخ که به نور محتاب روشن شده بود رفت و همه چیز را در آیودهیا در برابر خود دید. جشن و چراغانیهای مردمی که به رقص و پایکوبی مشغول بودند و پرچمهایی که در بامها به اهتزاز درآمده بودند. او از دایه‌ای که آنجا ایستاده بود دلیل این همه شادمانی را جویا شد و دایه با شادی بسیار از اقبال بلند راما برای ولیعهدی برایش گفت. مانسارای پلید با شنیدن این سخنان دزدانه و پنهانی نزد کایکی رفت و در آنجا خشم خودش رو بیرون ریخت و فریاد زد برخیز بانوی من وقت خوابیدن و آسودن نیست ممکن همسر درست کار باشه اما طبیعتی موزی و حیلگر داره اول به را رو از شهر دور کرد و الان شنیدم که در نظر داره فردار راما رو به عنوان یواراجا منصوب کنه اما کایکی از شنیدن این خبر ناراحت نشد و زرازیوری و به او هدیه داد و گفت مانسارا سارا چیزی که به من گفتی به گوشم بسیار خوشآیند اومد زیرا من بین پسرانم و راما فرق نمیگذارم راما بزرگتره و بنابراین برای جانشینی پدر سزاوارتر من هم اونو به اندازه بهاراتا عزیز میدارم اما مانسارای نابکار از قبول هدیه سحرباز زد و شروع به برانگیختن های شیطانی در او کرد. و با صدای بلند گفت اگر راما پادشاه بشه بهاراتا در خاندان سلطنتی جایی نداره مگه نمیدونید که اگر راما شاه بشه مادرش از شما انتقام میگیره چون شما قبل از او با زیباییتون مورد علاقه داشاراسا قرار گرفتین و اونو کنار زدین کایکی پرسید پس به نظر تو من چه باید بکنم؟ مانسرا گفت به خدمت شاه برید و خود رو در لباسهای جنده کثیف بپیچید و طوری نشون بدید که انگار رنجیدید. به شاه یاداوری کنید که وقتی در جنگ زخمی شد. چطور اونا نجات دادید؟ به یادش بیارید که چطور به شما قول داد که دو خواهشتون رو هر وقت از او بخوایید برابرده کنه حالا وقتش رسیدی که ازش بخواید به قولش عمل کنه بگید راما رو چارده سال در جنگل تبعید کنه و بگید شاهنشاه ها اجازه بدید بهاراتا فرمان را کشور بشه وقتی راما 14 سال تبعید بشه پسر تو جایگاه خودش رو در مملکت به دست میاره کایکی به این سفارش احمقانه گوش سپرد و بعد از اون که زر و زیورهای فراوان به او بخشید کوش کوشک مخصوص خودش روی زمین دراز کشید و حالت خشم و ناراحتی به خود گرفت. بعد از اینکه که شاهداشاراسا ترتیب تمام کارهای لازم رو برای انتصاب ولی داد دستور داد که آبفشان سلطنتی رو برای راما پر از آب کنند. بعد به کوشک زیبای کایکی رفت. همچون ماه که وارد آسمان ابرالود میشه، راهو افریت خسوف در آنجا چشم به راهش بود. وقتی داشاراسا همسر جوان زیباش رو دید که خشمگین و پریشان بر زمین دراز کشیده، او رو دلداری داد و گفت: چرا رخسارت غمالوده؟ به من بگو چه چیزی تو رو غمگین کرده. به اون کسی که حضورش پیوست مایه شادی منه، به راما سوگند می‌خورم که هر چی بخواهی برات انجام بدم. آنگاه کایکی لطفایی رو که پادشاه روزی به او قول داده بود به یادش بیاره گفت و با کلماتی مانند فرمان مرگ بیرحمانه با او سخن گفت پادشاه ها در مراسم سلطنتی بگذارید بحاراتای من با آب سلطنتی متبرک بشه نه راما راما رو چارده سال تبعید کنید که مثل زاهد سرگردان باشه آتش خشم پادشاه که دیدگان او را سرخ کرده بود، کایکی را تومه خودش کرد. فریاد زد: ای زن نابکار، راما چه گناهی کرده؟ من چه گناهی در باره تو مرتکب شدم، ای شوم ستمکار؟ راما با تو مثل مادرش رفتار میکنه. چرا تو در پی نابودیش هستی؟ وقتی آوازه خوبیهاش سر زبان هم است، من به چه خطای او میتونم اشاره کنم و بگم به این گناه تو را تبعید کردم؟ این سخنان و سخنانی از این گونه همچون سیل بر زبانش جاری شد و نگاه لحنه التماسا میز گرفت. اما کایکی وحشتناک همچنان بر حرف خودش استوار ایستاده بود و سرانجام گفت خودتون به من قول دادین باید به دهار ما قانون درستی و راسی وفادار بمونی؟ به خاطر دهار ما و به سود من باید پسرتون راما رو تبعید کنین. من سه بار این رو به شما میگم. شاه داشاراسا وقتی فهمید که نمیتونه او رو به چشم پوشی از درخواست زشت خودش وادار کنه مغرورانه از جا برخواست و با او خداحافظی کرد. روز بعد راه به خانوادگی واسیشتا در حالی که ظرفای مراسم سلطنتی رو با خودش داشت به شهر رفت. سومانترای عرابران نزد او اومد و واسیشتا دستور داد که بره و داشاراسا رو با خود به جایگاه مراسم بیاره. سومانترا به اتاق به شاه رفت و ورود خود را اعلام کرد و با شاه اینگونه سخن گفت به حکم آنکه که وداها سرودهای مقدس اینک در این ساعت برحمه خداوند خیشزاده را بیدار می کند حضرت شما را بیدار می کنم. تنها پاسخ پادشاه این بود عرابران راما رو نزد من بیار سومانترا به سرعت دستور را انجام داد آنگاه راما که به مناسبت اجرای مراسم خود را آراسته بود با سیتا ودا کرد و سوار بر عرابه در میان قوقای شادمانی دوستانش ره سپار کاخ پدر شد. هنگامی که در تالار ملاقات وارد شد شاهداشاراسا را دید که با چهره غمگین و رنجور در کنار کایکی نشسته. نخست جلوی پای پدر خم شد و سپس به کایکی سلام کرد. آنگاه گفت حتما خطایی کردم زیرا پدرم خشمگین به نظر می رسد. سپس رو به کایکی کرد و افزود. لطفا به این سؤال کننده ناچیز بفرمایید چه چیزی باعث تغییر اینچنین غیر منتظره در چهره پدرم شده؟ شاه داشا از شدت غم خاموشی پیشه کرد. اما کایکی ستمگر هرچه در دل داشت به زبان آورد و گفت شاه خشمگین نیست راما عزیز بلکه تشویش او از آن است که دوست ندارد چیزی را بگوید که شنیدنش خوشایند شما نیست اما شما باید به قول و وعده‌ای که او به من داده گردن بگذارید کایکی ماجرایی را که بین او و پدر راما گذشته بود بازگو کرد و در پایان گفت بنابراین این لازم پیش از زمان برگزاری مراسم سلطنتی اینجا را ترک کنید و دو تا هفت سال با موهای آشفته و جامعی از پوست گوزن سیاه چون ریاضت پیشگان در جنگل دانداکا زندگی کنید. رامای پیروز بر دشمن بعد از شنیدن سخنان کایکی بر خشم مرگبار نهفته در این کلمات لگام زد و به کایکی گفت: باقی نیست. من از اینجا به جنگل خواهم رفت. موهایم را پریشان خواهم کرد و پوست گوزن خواهم پوشید تا عهد و پیمان شاه محفوظ بماند. اما اندوه هم تنها این است که چرا خود پادشاه جانشینی بهاراتا را با من در میان ننهاد. زیرا به خاطر باهاراتا از صح دل نه تنها از پادشاهی بلکه حتی از جانم دست می شستم. آنگاه فوراً پدر و کایکی را ترک گفت و به دیدار مادرش کاوسالیا شتافت. و با سخنان مهرامیز که همواره اینگونه با او سخن می گفت، با لحنی بزرگوارانه صحبت کرد، زیرا از دست دادن پادشاهی تأثیری بر دل پاک او نگذاشته بود. مادرش را بر گرفت و اندکی از را برایش گفت. اندوه مادر با شنیدن این خبرهای ناگوار بیرون از اندازه بود. نیز نزدیک آمد و هنگامی که علت زاری کاوسالیا را برای او گفتند، چنان خشمگین شد که نزدیک بود کلماتی تند بر زبان براند. اما راما به نرمی و مهربانی برادرش را از این کار برحضر داشت و گفت ای پسر سومیترا، تبعید من و دادن پادشاه به دیگران تنها و تنها کار سرنوشت بوده و گرنه کایکی که به زیان و رنجش من راضی نبوده است. این فکر را شاید نوعی مشیت ایزدی به او الهام کرده باشد. کیست که بتواند با سرنوشت که فقط و فقط نقشه هایش را آشکار می‌کند، ستیزه کند. خود را به دست اندوه و خشم خیش مده، برادرم لاکشمانا. وقتی سرنوشت علیه ماست، میان فرمانروایی بر یک کشور یا زندگی در جنگل، زندگی زاهدان در جنگل لطف بیشتری دارد. لاکشمانا پرسید: چرا سرنوشت را مسئول می‌دانی؟ آیا واقعا در کارهای ابلهانه داشاراسا و کایکی تردیدی داری؟ اما وقتی دیدند که راما در برابر دستور پدر سر تسلیم فرود آورده کاوسالیا گفت پسرم راما چطور می توانم با از هم با کایکی و سومیت را زندگی کنم؟ اگر واقعا تصمیم داری خواست پدر را انجام دهی مرا نیز با خود به جنگل ببر راما جواب داد با هراتا از تو مراقبت خواهد کرد چون او با همه مهربان است تو هم باید در کنار پدرم بمانی بنابراین این کاوسالیا غم و اندوه را کنار گذاشت و دست در آب مقدس فرو برد و راما را دعا کرد. راما نیز با او ودا کرد و به محل اقامت خود برگشت. سیتا به پیشواز شوهرش آمد و راما غم بزرگی را که بر قلبش چنگ انداخته بود بر زبان آورد و گفت: سیتا، پدرم که خیلی به او احترام می‌گذارم، مرا به جنگل تبعید کرده است. سپس حمیه ماجرا را تعریف کرد و به او گفت که باید آنجا بماند سیتا و صدا گوش میداد. اما نگران و دلواپس عشق بزرگ خیش بود و سرانجام به او گفت چرا از چیز محال سخن گویی؟ زن وظایف بزرگی دارد اما آن اطاعت از همسر است حالا که به تو فرمان دادهاند چهارده سال در جنگل بمانی این فرمان برای من هم هست اگر همین امروز در پیش گرفتن زندگی زاهدان اینجا را ترک کنی من پیش از تو به راه می افتم و خارهای تیز راه برایم نرم و هموار خواهد بود. راما هرچه کرد نتوانست او را از این فکر باز و هرچند زندگی آمیخته با خطر و رنج بدبختی و گرستگی آنجا را برای او بازگو کرد سیتو همچنان بر سر حرف خیش ماند و گفت راما تو این اندرز درسته به رحمانان مقدس را خوب میدانی. که وقتی زنی را پدر و مادرش بر اساس قانون به همسری مرد بزرگزاده در می آورند. او هم در این جهان و هم در جهان بعدی همسر آن مرد خواهد بود بنابراین من نیز باید با تو همراه باشم آنگاه راما همسرش را آرام کرد و قول داد که او را با خود ببرد وقتی لاکشمانا شنید که آنها چه تصمیمی گرفتند گفت اگر تصمیم گرفته اید به جنگل پر از فیلهای وحشی و حیوانات دیگر بروید، در این صورت من نیز مسلح با شما خواهم شد. بهاراتا از پدر و مادرهای من مراقبت می کند. بنابراین ای برادر من پیرو تو خواهم شد. راما موافقت کرد و هنگامی که سیتا سرشار از شادمانی، آداب خداحافظی و دادن هدایا را به پایان رسانید، دو برادر به دیدار پدرشان رفتند، سومانترا آنها را به حضور شاه برد سه همسر شاه پیش او بودند شاه سال خورده برپا خواست و برای دیدار آنها پیش آمد اما همین که از تالار گذشت از رنج اندوه عظیم خیش نقش زمین شد راما و برادرانش برای کمک دواندوان دوان بالای سر او رفتند راما به پدر خیش که اندکی به هوش آمده بود گفت اکنون باید اجازه رفتن بگیرم و وداع کنم هرچند کوشیدم که سیتا و لکشمانه را باز دارم اما آنها هم میخواهند با من به جنگل بیایند. لطفاً به آنها نیز اجازه مرخصی بدهید. داشاراسا بیدرنگ با کلمات اندوهبار با آنها ودا کرد و هدیههایی از قبیل جامعه و جواهرات برای سفر طولانی سیتا به جنگل داندکا به او بخشید. برادران با مادرانشان وداع کردند و آنگاه با سیتا بیرون رفتند و بر عرابه سومانترا سوار شدند پیش از آنکه سومانترا بر گردهٔ توصنهای گزین شلاق بزند راما با شهروندانی که آنجا گرد هم آمده بودند چنین گفت اهالی آیودهیا به باهاراتا احترام بگذارید فراوانتر از آنچه به من میگذاشتید و به او علاقه نشان دهید حتی بیشتر از آنچه به من نشان میدادید این کار را بکنید که مایه خوشحالی من خواهد شد